سلام. فرصت خوب های چه کنید آره من آره این فالش هم باشه و من جرید بارش هم بزنید یه ما برنده و تامنشد مرسیز کار مشاهده. در بصاتون اجازه نمی دادم از منتونید. یواختم ثبات خوه ماشین اصلا یه جایی کنم؟ اصلا من شو ده بودن شما پاک کردن اینو پاک کردن شانزده فردا من 26 شما بریم بردم آها این 26 26 آره 26 در سر تنگلده ها پیده مفتو <تحدث> کنید شده در بایی قدرسته؟ بایده همه تو nel <ok corso چند داخلش ایوال در این صنعت تازه بحث اپلیکیشن‌ها گفت چیکار کنه؟ زو گفت چیکار کنه؟ راستش البته با این اپلیکیشن‌ها که سر نادر میذار صدق واقعا و با ارتباطاتی که تو دارید مثلا بیشتر خیلی مثلا مثلا درجه ارتباط با مشتری و مستر دوستانون یهو داخلش چه ضرر اصلا باشه بخشتنی کنده و بعد باشه اطلاق مشتریان تلفنی باید تلفنی کنیم باید چکا کنیم مقدمتون باید کنیم زمان ها خیلی خیلی خیلی هم درسان از سیز دامونه فقط سعی کنید یعنی ماستو توی قسمت توضیح می کنید بله، سعی همه رو با عدد اعلان میکنید، با عدد اعلان میکنید من کوسه قام که نام حال <سؤال> اینکه برای فروش آنت گفتم داداش شما شنوت مثلا ما پیدا بشه درش تلفنی درش تلفنی باید مشتری معرفی کنید مثلا در روز باید ده تا تلفن بزنیم. 10 تا تماس بگیرید بشه بشید از این 10 تا تا مثلا مذاکره حضوری برسه از این 10 تماس که با مشتری میوید دوتاش تاش به مذاکره حضوری برسه در بخش من این 10 تا تماس هر روز 2 تاش مذاکره حضوری برسه این برنامه رو بذاریم ها من تو سیلستارتون به تو توضیح میدم همه کارتون سکمه با عدد باشن دقیقا آدم ها رو انسان ها رو با چیزی که میشه کنترل کرد عدده قیازی واقعا نمیشه برنامه یعنی عدد مارکتینگ پلان یعنی عدد سیلست پلان یعنی عدد عدد پلان یعنی عدد سکم بیشن عدد توی کارتون دیده بشه سلام هم باید برسیم اونجا میشه اونجای بفرم باشیم باشیم باشیم باشیم این عادلیت و مهارت محارت لخود تو تغییر بکنیم همش با عدد کار بکنیم هر تو ما مذکره میگیم زمان عدد عدد عدد همش عدد کار کاتالوگ من فقط خزینه می‌کنه این خانم به دستش میاد. اوه، اوه، در این نمی‌شه گفت. تو این دوات منوان اصلا تخش ندیده. مرسی. آره، ده حقی دو... که بود شما افسایشن. خیلی مش باکتر مینده. تو شو نمیشه چون نه تا نمیما. علاوه شه مشتریان حالا مشکلی که من تو داره باید با عدد نام می‌کنه. مثلا برهونشون سال 94 ملشما این کارهای من تابروز بیست و پنماس تلپونی میگیرم و برنامه چند بیست و پنماس تلپونی دو تاشت به جلسه حضوری برسه دو تاشت به جلسه در آقای پرزنت حضوری برسه یا مثلا شاید کاتولیک برشور نشه تقییده ولی میشه یک پرزنت شما بود با با بور با اکسل با پاورتان یا مثلا مارتیمیدیا میشه تنین کرده یا مثلا اعدد که کار شما نیست یاد رفت برش کنم. روغاوای شما کیان، بازار شما چند تا نیرو داره؟ مثلا مسی، مسی کاریاریه، ارزان خدمتشون عرفان، چند تا نیرو داره؟ کجا کار میکنه؟ چرا صاحب بازار داره؟ چه جوری کار میکنه؟ این یعنی شما روغاو. شماشون عدد، آتی سازان چند تا نیرو داره؟ کجاست؟ اگه خوب مکتپلن شما داشت که نمودار، با نمودار میشه خوب انتقال داده. و صدا آره تا آخر در این کورستون ایمیلتون با نمرات رو بدم. برای این جلسه آخر آه، مکتپلان. آها، سیخ بذارین این جلسه تا رو بدم، تو صنعتی زمان می‌تاره. سوسوگو کامل. درست شما دوباره آره کامل بکنید دوستی. تو من نمارات من به بر مارتین پلمن یا که میگم هر اجرا کنید، مثلا یه عدد باشه، نمردار باشه داخل دارکارد. پس پروژه این نهایی یه کورس استوندیگر. یه مارتین پلمن خوب واقعیت تو این دنیستید؟ آیا باشه؟ برم بزنید که هم توی مرمون رو شروعشید واقعا گلاد میشید چیه اون چه تصدیل چه خدا پرار دارد؟ من گوهرانی برمز بکنم کنم گوهران ما نبکنم کنم کنم اونا که ای فعنیاتی اینجام میگیرن؟ نامره ای که ما اعلام میکنم، دوری که ها اصل اعلام میکنم به خود آموزه، نامره این نواهی میشه درجه ای میگیرید، بی می خب همزم تفاید شدن که دیگه شما مرتبگانیتون من این هفته براتون ایمیل کنم من به تو ایمیل مکنم چون هفته تهران نبودم یه بخششو کار کرده خبانه ما یه چیزهایی می برای کار ما که مثلا یه چیزی به عنوان وبسایت هستش مثلا رغبای مهم اشخاصی که خب رو خود وبسایت ما از کجا میتونیم بفهمیم تعداد پرسونلشون و اینا چیزاییه که تو محیط خود شرکتشونه و قصهات مهرمانه هست بگیر چرخزان هست که شرکتشون تو با مشتری باید شرکت کشید یا کسی با اونو مشتری بپسید تا خیلی شرکت چرخزان بیان که گوه خیلی تو شرکت های شما و مشتری هم نه انتا واقعا به قصده میشید واقعا هم درم بتونید چرخزان اتراب ما هم الان از چند پروژه ها یک چند دانشجو اینجور باشه حساب کردم گفتم میرید شرکت رقیب این اطلاعاتو در میارید هر رقیبی که آنالیز کنه بیاری 8000 تا میدم 12000 تا میدم 10000 تا میدم یه پرسن شما هر آنالیستی که بکنه بیاره یک برابر 10000 چون دقیقا شکه هستم موبایل ما بدون ندارم چکار کنم چه خطاطوری نکنه بزنس نوعی جنگ حالا جنگ محترمانه است وگه داخل جنگ وجود دار نمیدید نبینی بیخیال باشید ساعتاش رو باید چک بکنی دگاه بکنی کنترل بکنی در رو چک کنی دگاه کنی کنترول بکنی البته الان اصطاق خیلی شرکت ها زرنگ شدن مثلا همین رقبه اصلی ما که سه تا شرکت رو در نظر گرفتن کلن اجازه نمیدن کسی تو شرکتشون. اول باج تلفنی صحبت میکنن بعد میگن که حالا یه پیش پرداخت بده اگه سفارش داری مثلا اینجوری نیست که مثلا زنگ بزنی مثلا سلام بفرمایید مثلا کارتون چیه اون چجوری میشه وارد شد یعنی بعد دیگه حداقلش اینه که من یه کرد دیگه آره من هزینه کردم منم هزینه کردم سفارش بدیم ایشون که حتی حتا پول خرید رو خریط میکنن پول پروزون مثلا ما نیرو می‌رسند که جلسه‌های واقعی‌وار از بازار خرید کنیم. بیاره ما مجبور شدیم جیسے 20 میلی و فن لازم، درحقیقی، تاکه آنالیز بکنیم. مثلا کمپانی تو مندل آکسما مشتری مجبور شدیم 25 میلی تومان بدیم که جنسی که رایمی دسته‌های کالی که را بخریم بیاریم آنالیز کنیم، مزیت‌های آتی ماشین آلمان چیه؟ که بتوانیم فردا زبونم دردش بشه مشتریو بگیم نگاه کن، جنس لقب، این خصوصیات نداره ولی آلمانی نداره. که دقیقا اطلاق کامل کافی بهشون داشته باشید مجموع شما خواهد حضنه متقابل دیگه اون همین همین شما رو بیخره بله دنیا همینه دنیا هم کسی که هایی داردی گیرودا بیفته دیگه امتازی خواهد بشه نه واقعا همینه, <تصفح> <دانیو> همینه. <تصفح> شما رضا کل دنیا همینه. هم میدهد رسانه های هم چک میکنند تبلیغات هم میگرد چک میکنند نگاه میکنند از خود من شما که کارای انجام میدن واقعا بیزنس من میگم یکی رقیبی که مشتری نگاهت باید به این دوتا باشد این نگاهت منظور می که این دوتا همیشه باید کهفه ترازه باشد آنالیز بشن حتی این دوتا هستن که به شما یک ستاره میدن که توضیح ست چه کارهای هر یکیم انجام نمیدهند من انجام بدم چه کارهای رقبا برای مشتری انجام میدم که من جوره دیگه انجام بدم نمیشناز ارتباطی مثلثی از ارتباطی ها میشه شما میشید کن کار کرد کاری که دیگه انجام نمیدم چیزی دیگه هم انجام نمیدم اون که دیگه انجام میدم واسه مافراتمیشه و الا هر کار دیگه منم خواهم انجام داد خب جاگه خودم پیدا نمی کنم، چنم مثل معلوم هایی بینن مثل ما خودم را را می سام اولی، سه پت کتاب های من، اولی کتابی منبکت بوده تو اون حوزه، تو اون رشته، تو اون شاهده نه من مثل دیگران کتاب، مثل این هم ترجمه کنم کار بیده. یه تمایز رقاقتی باید حتی تو کارت باشه، توی کاری کنجام ما بیشتر پروژه که برای مشابه در این هرزن خود، من شما مهندیسی خورش میریم شاید شرطه ماش مزیت رقابتی هست اونی که در واقع بتونیم اون کار خودمونشا معرفی کنیم راحت معرفی کنیم خب هسه من زیاد سوال می کنم اینجا یه بحثی پیش میاد اونم اینه که ما خب شاید نتونیم اون همون لحظه حالا رقیبایی که خیلی قوی هستن و ساعتشون از ما خیلی بالاتره بخوایم رقابت کنیم بعد بیایم اون مزیت رقابتی رو اعمال کنیم سازمانمون ممکنه که اون رقیبمون اینو بفهمه بعد خودش بیاد اون کار رو انجام بده بعد با امکانات و هزینه هایی که انجام میده بتونه خب به هر حال از ما جلوتر بیفته یعنی باز به ضرر ما بشه اون مزیات رقابتی در این زمینه بعد چیکار کنیم آیا بعد رقیبامونو یه جوری در نظر بگیریم که هم‌سطح خودمون باشن یا باید اون رقیب خیلی بزرگو در نظر بگیریم با اون بخوایم مقابله کنیم مزیت رقابتی اینه که مدرنه به روزه ولی باید به فکر جایگزینش باشه یعنی باید به این فکر باشه که یک از دیگه این مزیت خطرشو عادی میشه این مزیت رقابتی دیگه چیزی که یه بار ایجاد بشه دارم باید اون باشه تا اون تو کارت اعمال باشه حالا اصلا شما میگین من اینا امپکتش دارم این رو انجام میدم تقریبا من پولش زیاده با قدرت بیشتری انجام میدم ما میگیم متد اجرایش تو فکرش دست شماست ایشون شاید خود الگوبرداری برداری خوده ولی فکرش شما داشتید ریه عیتم هایی است، ریه فاکتور های روی زیر ساخت روی شاخ و بردار رو زیر ریه زیرساختهاش، ریه شاخص بالگرد سرکم میشه بیشتر کار بکن، که دعوم به فهمید که نه، وگرنه نمیتونم هم <تصفح> <تصفح> خب فقط ظاهر شما یانچورا چه انجام میدم. حالا تو، وجود داره، خب ولگوباردلی فقط ظاهرش رو مرا آشکارگوباردلی کرده، در باتر که چی قراره بذاره چه تفاوت قرار بوده؟ نیست. ما خیلی معتبریم، مثلا ما حمل رایگانو، و ما مزیتی لغات شرکت داریم، مزیتی لذتی بعد از یک مطلطی روگاه رو باید همه کار کردن ولی ما حمله رایگان گذاشته بودیم نه تا در خونه مشتری تا داخل خونه مشتری درست ولی ما ماده. تا جبه در میگردن بعد میگفتن هم نمی بعد ما کناش آموزش گذاشته بودیم مم. که هیچ بیانه و نبیدم شیرینی و شی کیلو و هم اینا نگیرن ولی اونا این کار نکردن شکست خوردن ولی ما چون این کاراستو با انجام دارم که پرسنال نمو آموزشیگه بکنم ما حقاب شدیم اون منزیت را حفظ بکنم <تصفيق> من تو شهر هستم یه رقیب دارم که توی چه سال لفت نستم حقیفش بشه هم محسس هم امراد که اونجا رو مدیلیت کنی یه تابلوی جلو داره بروتی شهر را میزاره خواهر فرما هایی که نیرو میخوان اطلاعیه شروع میزنن روی برگاه های آشار میگ کارجو یا کسی که بیکارو از شهرک وقتی بارد میشه پیاده میشه اول میری سراغ تابلو اونجا اگه کار مورد در پول میره اگر نبود باید میاد سراغه این برای من یه دردقه است همیشه هم که عذیت هم میکنه یعنی چه کار فرماد چه کارجو اول میرد سراغه باید اون تابلو بعد میاد سراغه برد من با اینکه کاریابی هم مجوز دارم قانونی هم. مضیعت رقابتی برای خودم به وجود آوردم ولی اونو نتو <تصفيق> من منوز حقیق بشن خب اونو شما نمیتونی بزنی؟ تابلو نه، تابلو در افتیار خود مدیریت اونجاست جاست. ای که ادارهش حرکت داره به این معموله ما خیلی کسی نیرو، کسی که بیکار میشه دنبال کار میاد خیلی معاملته کسی که دنبال کار میگرد، دنبال نیرو میگرده شما این مضیعت رقابتی دار که اون مدیران حسابداران مابلان ماری مدرن ماری پیدا میکنین که واقعا دنبال نیرو میکردن با اونها ها در سرویس ها خوب بیم و این سرویس مارکنگ داشته باشی تو شما باشید هر بگی کارت میکنین کارا بردار تو ذ ن چون نیرو چ اخراج رو این نیرو که اخراج شده داره میره مثلا دنبال کار برای بله. این پستش خالی شده اون باید شما ز میکنن شما از این را از اونجا پیدا میکن با, با اون سکن تا علی داشته باشید. اصلا من درمونه شما خیلی آمده سر کلاس های من یه مورد تیه قوم بود، سر کلاس های امبی من, من کاریابی رو ایران شد ایران، های امبی ای دو ساگه من تو برشانه مدیبیتشون میمه اصلا ما چنده از اطلاعاتی برای ایجاد کردن خیلی جالب بود مثلا ایشون تو بحث مثلا مهندتی حسابدار به شرکتها شده بودیم تخصص تخصیص خاص یعنی واقعا شون این بانک تویوترس حسابداری خبره, خبره داشت آماده کردون و تحیل کردون این کل در پنک و اطراف هر کسی لنگ حسابدارون میشه فقط میگه ایشون ای واقعا تو این کار توقعه بده کردون حتی میگم از دانشجوهای حسابداری شون که با اونو کار کردن ارتباط پرار رو آماده میکرد برای این که اون سیستمش پربرش بده برخب خیلی واقعا حتی کارانشون می‌تونه یک کاریابی تو یک سال چند میلیارد. اتمنه ترمینالی جاب. می‌تونم همیشه کاریابی ها رو لغو کردم. در تن مثلا سی دستی می‌دونه حالا چه می‌کنیم. در کل بگم حالا چیکار می‌کنند؟ می‌تونیم همیشه ترمینالی جاب کنه با هم کار. و من یه بار دعوت کردم دعوت مطمئن رفتم زیاده. من داده کردم. مثلاً شاید اب اوله دکلاسیون بیشون مارو داده کردند تو دو سال اون ساختون رو توسن رو بر خودش با مثلا خونزش رو بزن تا میگه بگیم اون رو باید از اونجا ایجاد بکنه بیا تا به اینجا برسی نه از سمت ترقیه کار اینکه مبادی شو باید عرض بله؟ مبادی ورودی عرضاشو با تغییر بگیر مثلا خروجی های مثلا دانشگاه ها، مؤسس افراد یا هم از طریق حسابداران حساب داران مثلا اگه تو ا اونا روشون کار بکنیم این یه تغییری تو تخصصی کار کنیم موفقی. یعنی اگر همی که استاد تخصصی کار کنی میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. من این وضعیت رقابتی که اونجا به وجود آوردم شاید کاریابی دیگ رقیب دیگه نداشته باشه. اینکه یعنی ماشینم هست، من جلو دفتر هست. کارجو که میاد اما دست کارفرماز از اینجا دادم یه جای چینی رو میخوام. حالا از سمت نوشانیم جایی که ساده میکنیم نوشتن ماشین. تا مهرهای که تکلیفش است که سنتاتون باز سنتی معلوم میشه باش پسته. تغییر میکنه. حالی اینکه من بیشتر <تصفح> از اون تابلوهای که نمیشپیارم میشیم اینجا خیلی میاد. چون تابلوهای داده دسته هزینه نداره برایشون. میان اونجا تابلو رو نگاه میکنند و میان شروع کنند به مراجعه و زنگ زدن. که اگر کار پیدا نکردم برگیان سراغ داریم <تصفيق> شما یا من مثلا بزنس اینی خلابیت کنیم رومن بزنس اینی خلابیت کنیم شما خلابیت کنیم شما نهیم تیرون رو تابلو چیزی اخوادت به چیز کنیم؟ حالا نهاتا من یه دونی تابلو گوشتش میزنم محسسه یک کار مشابه شغلی کاریابیت کنیم که اونا رو میبینم بعد میان سراغ داریم <تصفيق> شما کاراتون تو شما میشه. این تخصص کار کردن باید میشه کمک بکنه. ایشون تو شما شما خیلی داروش واقعا HR امکان منابع هست ده دخت تست برای منابع است ایشون دوباره در درهای های کار برید و هست اصلا تستی است خودت میگیم تستی است خوب بدی دستات وفادالین این رو به سنجی بهش بدی یه سال دو, دو سال مثلا دستای سنجی استرگاه هم این کار رو انجامم حتی من برای بروژرام انجامم این کار اینجوری، کار خالوالاده اینجوری انجام بدی به کار تروان وقت اعتماع بدی وقت قدرت بهش بدی که در مزید رو خیلی گسترده است وقتی من این رو سلیش میکنم تا یه سلیز پلان خیلی خوب در واقع برشای اینه شما خونزی برم در تصمانی من از اینجا شروع میکنم اولین تیکر که فروشنم از سلیز تار به یا هدف گذاری تو فروش. فروشن سلیز پلان تقریبا شبیه دقیقه تیم پلنده با یه تفاوت هایی این عملیاتی تره، عددی تره، اجرایی تره مثلا شما هدف گذاری می که سال آینده مثلا 1 میلیارد اصلا روش داشته باشیم. اون یک میلیارد و میگه خب ام که خواهد رهم فروش داشته باشم این شما باید هدف گذاری بکنید و هدف گذاری که کردی تقسیم بندی بکنید هدف گذاری برای چی؟ برای مثلا مشتریان به مشتریان هدف میدید به پرسنل هدف میدین به دستگاه ها و تجهیزات هدف میدین در واقع یک سیستم مالتی ورتی تارجتینگ می یعنی ما در واقع مشاوره میدیم مالتی تارجتینگ یعنی هدف گذاری چند آنه چند, آنه چند, آنه چند آنه. در میدیم. چی به سیستم می منظور از خود دستگاه مثلا این دستگاه انو باید پولیت کنه پرسنل باید اینقدر کار انجام مشتری باید اونها خرید بکنه عادت کوزو تقسیم مالی اینجوری انجام میشه حالا کوزو من به صورت امکان راحت میذارم عشان وقت راشنو شفاف بشه شما به پیشبینی فروش انجام بده حالا که هدف هاو کوزو رو 20 درصد به مثلا فروش یعنی اینکه من بفهم قابلیت این در واقع کار من قابلیت پیشبینی مقابل تقاضا کوزو افزایش سیستم خودم خودم باید بفهمی حالا این سیستمیاش درست باورونیم سیستم آقا گزاریه که فروش مهم نه والا ماقم ما حدام که حداد رو را به کار بذارید ما همیشه مشکلمون مشکل به هر کسی ما و اساس ساعت حضور ساعت حضور داشتن یه فهم فروش اصلا فهم کردن فروش یعنی با هدف باید ترساند حقوق بدید یعنی بر اساس میزان اثر بخشی بردشون حقوق بدید ساعت ملاک حقوق نیست حضور ملاک حقوق نیست من ما فهم فروش رو روان کنم درک شور درک شور فروش رو روان یعنی که بر اساس میزان فروش و پرسنات باید کار بکنید بیس شما باید پرسنات بیس باشه بیس شما باید اثر یا هدف بیس باشه اولین چیزی چه من دارمم هدف بزرگذ میگه؟ اولین چیزی که تو سیستم فروشتون توی سالت به من تو برشه هدف هدف فروش و تقسی ملیوم هدف هدف گ اون چیز باید هدف باشش، هدفم ریالی هم. اصلا فروشنده های دنیا رو با عددم میش نهبا ساعت نه با قیافه نهبا شکل شماه با هیچ میان فالانی فروشنده مثلا میلیون دلاریه فالی فروشنده مثلا 100 هزار تومانیه. لبل آدم ها تو دنیا که این با عدد هست، با و وزن و این ها نیست، هیچ ملوک بریم اون ناقای آقای لیویلسون فروشنده میلیون دلاری، و فروشنده ها رو ناقای دویلیان ناقای اینکه بهتر که فهممون از فروش افزایش بده کنم مثل دنیا مثل فوتبالیستا ها می جابجا می مثلا <تصفيق> من ببینم شما مثلا پرشنده خوبی هستی که شرکت در پرنمی خیلی راحت هم از ساما شما میگم وجود چقدر بهت میده با چند درصد پرسان من بگم شما میگم من رقم بالاتاری میدم با چند درصد پرسان بگم من کار مثلا مدیر پخش کاله من مثلا از اونجا بزنم قبلم توی سنیچ بود با یه مبلغی اینجا اومد مثلا آی سلیمانی گفت من این ماشه شاستی یک خونه تو برد بدبیدم با اینقدر ماهیان حقوق براد بیاد به شما مدیر آمدن. مدیر فروش من، مدیر پخش ما مثل فوتبالیستا ایشون اومد دوست ما داشته کار میکرد یه کمپانی دیگه ینجی باز بهشون پیشنهاد داد مثل فوتبالیستا ها جاو جاوه با عدد بیش پسند بعد همه کارشون با عدد حسابدارهای با حسابدارهای برونگر را بهترین فروش با هم با عدد سر کار دارن، هم هم رونگراست یعنی ارتقا برنامه رو کل این ساعات کی خیلی بالای برای فروش اجتماعی بالایی داره ما دیدیم الان چه بحث سیستم این دو واقعا ولی فعال یعنی فروشنده رونگرا بشه با استخدام فروشنده فروشنده‌ای درونگرا خیلی داره کار می‌کنه فروشنده رونگرا باشه یعنی ارزش خوب داشته باشه ارائه خوب داشته باشه خوب بتونه کارو آخرین چیزی که تیم فروشان باشه هدف دقت کنید اول چیزی که سیستم فروش رو راه بیندازه هدف تارگیت حالا این تارگیت باید چی باشه؟ این تارگیت باید عددی باشه وزنی باشه طولی یا هرزن قطعا شمایه چی باشه هرزن قطعا شما که حجمی باشه این ها چیزایی که تو هدف باید دیده باشه قدید ما متاسمانیم تو سیستم ها منداریم. مثلا هرزن قطعا عددی بذارم شما خانم. در ماه چهار میلیون باید بفروشید، چهار میلیون باید بفرشید وزنی که از محصولات شما میفروشند حجمی که میفروشند یا هدف باید مثلا زمانی باشه، هدف زمانی باید داشته باشه این موقعی ما میگیم مالتی تارگتینگ که از جهات مختلف بهش هدف رذارید، هدف زمانی، هدف هدفی هدف ریالی، هدف وزنی، هدف حجمی. و بعد این هدف در این هدفه که سیستم فروش راه میندازه و کمند کنه شما اول سلز را بیفته تو سلز تنها چیزیه که معنی میشه هدف هدف من چیه هدف نتیجه پایانی که پوشش‌های شما به سمت خود هدایت می‌کنه حالا ببینیم ویژگی‌های هدف مالی که هر طرف فروش می‌ذاریم چی باید باشه حالا گزاری این مزیت‌ها خود داره حالا اینا شما چه پاییشون بتونید درآمد هدف کداری میکنه اندازگیری پیشتون رو پرامه میکنه هدف کداری انگیزه روی خلاص رو بهتنی بکنه اصلا سیستم فروش پایین پومی پاید هدف مشکل داره مم. یا هدف خیلی بالا می گیرن پروشتان کم انگیزه نداره کار کنه یا هدف اینقدر پایین میگیرن یک طرف سسته شکل فرای میکنه اصلا فروشنده آب به زمان محدود بشه فروشنده نباید به ساعت و ک پروش 24 ساعت کوشش شروع باشه چون برای خودش داره کار میکنه کارخونا را از خودش میدونه شرکت از خودش بدونه برای شرکت کار میکنه برای پورسان را خوب پیش شکلی بپشه پروسانت رو ها دگرگون میکنه واقعا دگرگون میکنه یعنی اصلا از این رو مون رو گذاری ها یه پورسان تا حدرگزاری ها یه پروسانت مثلا جابجه یه پروسانت میکنه بدیه فرآش من به واسه این جان هماهنگی خب این مملکت ما یه خورده تاسخانه مدیران شغل فروش رو ندارن راحت تر خلاصات معنا فرما راحت میشه یه واقعیت ها. مثلا میاد طرف فروشنده هدف میذاره میگه اگر شما 40 میلیون بفروشی من 400 تا میت پورسان این طرف یه دفعه میاد مثلا 80 میلیون فروش 800 تا میگیره با حقوق ثابتش 800 تا میشه یک و گرفت تا این فروشان. 1, 2, بیاد بر هدف سنگی میذاره میگه نه این ما اگر هر 400 یا من نمونه داشتم فروشندگی یه دفعی فروش گندهی کرده حقوقش از مدرامل رفته بالا از این ما tie امارات که تو کشورهای دیگه همین چند وقت ما تو ارمنستان یک سم اخشو انداختیم چند وقت پیش آذربایجان بودیم دوشنبه یک در واقع چی سم خو انداختیم تو اروپا اینا خیلی دیدیم این مال فروشنده حقوقش از مدینامان بالاتره ولی چیزی ناراحت نیست مشکل دغدغه دق نداره ایشون فروخته فروختن شجوش ولی جمعیت میگن فروخته بزن تو سرش که نتونه قضیه این خوب خیلی بده. این حرفی که بزاری این تغییر این هدف از طرح این کارها خب به سیستم منزله میجام. فروشنده قرار انگیزه داشته باشه که بای 500 تومن بگیره روش جونش. من هرخواهم فروشنده استفاده کنم از سازمونایی که خودم اختيارشو دارم. خودم مشاور به تمام معنا انجام. فروشنده رو کهش انجام میگم نه فقط شما. ما 670 تومن، مای 700 تومن قبول و پایته. من میدونم با اینو فقط که خنثی میشه. ولی تا 10 میلیون تومن تا 20 من آزادی در هیچی هیچ سخت و رو نگیران دارم هدف که تا برو بردش طبعا مثلا من یاد وانتشان میزاره وسط ارزان زندگیشان میزاره وسط در میاره واقعا مثلا من که از کمپانگی ها محفر یک روشنده اومده وانت خودشو تلفن شخصیشو همه رو گذاشته توی سیستم مایداره هفت منتران در میاره کجا ما اصلا یه با یه بارند اینو با یه افتوان حالی اینجا سخت هنر هستن برای شد عید سای گدشته، اسران به سای 14 میلیون در آبود دادیم رو اینکه دادی این که این که کار میکنه کاره آزاده، میتونه این کار انجام کنه توی این را متحصان که اینها برای میکنه تحصیح میکنه خوب خواهش هم اینکه حتما سلیسپننتون برا احس حتادویی باعث تمرکز میشه. باعث تحریک میشه. مثال دارم شام گم. <تصفيق> مثلا به این دوستان بگم <تصفيق> که شما باید این ما هفت میلیون تومان بفروشی. با هفت میلیون تومان مثلاً میاد میگه که خب، من هفت میلیون تومان برای ما بفروشم. هفت میلیون من حال مثلاً صلام تا هفت میلیون هفت سایت باید من بازدید کنم. نه فقط چهار. تا سایت در واقع میکنم و چهار تا جنس از این بیشترین هر پروژه دوستم. این همون لاستیک بود که میگه زیاده نمیتونم خیلی سخته. ولی بعد من میکنم حداقل قدری بعد تقسیم, بند. تقسیم, بند. باید تقسیم بکنم. باید و, و, و تقسیم بندیش چی بیا شما چهار تا سایت در واقع این ماه برم من بیاریم. چهار تا سایت رو تقسیم میکنم یک ماه میکنم. ماه. تا سایت یک ماه. هر... تو یک ما باید چهار بساید. میشه هر هفته چند ساید؟ باید هفته مثلا میشه یک ساید. خب من الان نارم زمانی به این هدف دادم. ریالی. ریالی هدف دادم. حجمی هدف دادم. ریالی یا عددی هدف دادم. میمون زمان. هنوز من زمانی به هدف ندارم. زمانی هدف دادم چرا؟, این هفته چرا؟ این این یک هفته گذاشته. ولی میمون ساعت میذارم. این یک هفته چند ساعت؟ چند چن ساعت؟ 32 ساعت؟ چند ساعت کار می ساعت؟ روزی دو... جلو... ساعت کار ساعت؟ کنید؟ چرا ساعت؟ یک هفته چهل ساعته؟ شما چهل ساعت تو هر ساعتی چهل ساعت باید چهار ساعت یک ساعت چه ساعت و یک نه بکنید. چهیز ساعت و یک ساعت چهیز ساعت،, ساعت،, ساعت هر ساعت شما اگر بخوایید چهار تا تماس داشته باشید با کمپانی و ها تاسیم میکنید. میگم از این چهار تا اگر چهار تا تماس در هر ساعت از پایه چه چهیز و تا شد. ساده شست. ساده شست. سنده شست تا تماس داشته باشید باشی باشی باشی. راکی بهش میگم سر تماس پرگاهات من نشون به درست هر سر و تماس صبح تماس بیده سر و شهسته سایت شده؟ من شیشتا سایت فرزت نمیم کام یه دو هرده بگذیرم طبی زیبه میشه میشه راحت بهش میگم تو باید ماه چهر مگیم بپرشی نارد میشم میچه میمی خیلی زیادا هدف بریم کشم میام تقسی بیان 40 ملیون شما هفته بعد 10 ملیون برمشیم پس این میشه ماه این میشه هفته میان روزانهش میکنم روزانه رو میشه چقدر اینو تقسیم اینو ده میکنم رو هفته را هفت نمیدیم، هفته را پنج پس تقسیم پنج, را پنج را چهار میشه؟ دوم می. روزانه دوم می. بیا تقسیم بر 8 ساعت کاری می‌کنیم. حالا هشت ساعت رو نش می‌کنیم، من اینکه بهتر 10 ساعت روزانه 10 ساعت میشه ساعتی چقدر؟ ساعت 200. باقی شما 8 ساعت می‌ریزید، من باز اینام خیلی نمی‌کنم. میام توی ساعت مثلا 60 دقیقه است. یه 60 دقیقه شما تو هر دقیقه بتون چند تماس داشته باشید؟ بر اساس تماس، بر وزن در اساس غنز نظره محصول جزیات با جزیات مثلا میبینه یک رخ به ساعتی فرق چیز که داره من ساعتی مثلا یک کارتون بفرشم میشه دویستان رو یعنی یک کارتون من در یک ساعت نمیتونم بفرشم براش عادی میشه بعد این طرف لازم ایست براش کنتور بذاریم بذاری دروبی بذاری. براش برایش فهم شده قامون شده که ساعتی باید من یک کارتون رو بدم تماساش هد هدفدار هدف زندگیش زدنگیش زمانش هدف داره باید همهایی، تمرکز تمرکزی برای اون فعالیت میشه تمرکز پیدا میکنه فقط اون کار یا اون یا اون در باید, باید, باید هدفگذاری امکان مقایسه نتایج و پرامت ها رو به میده امکانی که بایدی مقایسه بکنم توانمندی شما رو با توانمندی دیگر آخری مثال دارم به میگم طرف اومده ما من، فروش به اون فروش بسال اقلیاتیه مثلا با تماسه، با حضور با پرزنت با جلسه هست در هفته 10 تا جلسه در هفته ده جلسه میذارن می میشه ماهی 40 جلسه از ماهی 40 جلسه یه دونه قرارداد من نمیتونم اضافه کنم ولی کسی دیگه هست میگن 10 جلسه میذارن 4 جلسه از 40 جلسه مثلا سه تا امضا میکنن با بیشتر می ازشون میشون از می مقایسه توانمندی آدم ها اینقدر کار میکنم این نفر نش معبوز بکنیم هدف خودش انتافف برنامهشنخصباره که شما چقدر از هدف انحرا چقدر مطمئن گرفتی نی ها را استخدامد بهجا بوده وقت بجا بوده میزان کار هست همرقق باز ما هدف مش میشه شما برای سال آینده هدف خودش رو 4 میلیارد مص چهار اینکه من به این چهار آخر سال نمارد رسیدم یا من؟ از چه جای ایراد بشن. هدفم ایراد بشن یا هدفم خیلی, خیلی گنده گرفتی پس را ناامید یا قابل در هدف دقیقی نموده یا رو رو خب تقریبا چی نشنون هده؟ سیستم که هدف داره محفظه سیستم هدف شما هم یلان هدفت رو مشخص کنی سال بعد مثلا حبوبت هم انقدر بشه مثلا سال گذشته ما 2 میلیون درآوردی دوازده تا دو میلیون شده 24 میلیون سال سالانه هدف, هدف میذاری ما سه میلیون در بیارم تا سه میلیون. تلاش می‌کنی ولی 36 میلیون بعد میگی تو 3 4 واس میلیون درآوردی میگی که هدف قرار کوچیک شد. باید هدف بزرگتر بزنی. یا شاید مثلا شاید مثلا شما هدف که میذاری نتیجه مبوسر باشه فالت تو زاعت شناسایی هست میشه این وقت من این جدا هدف خودت هم میرسسم به تماس میام هر کاری غیر از این کامش ضاعتد جو رو مییررهسم جسی حضوری میگم هر کاری غیر از این کارش زائد هر ختی غیر از این خ چه زائد کاری زت شناسایی میشه که طعیه که تعطیل میشه دخواهی ما خیلی از این کسی که میانم مراجعه بکنم میگه من دوربین گذاشتم سیستم سواتی گذاشتم میگه میانم یه فایده هست هدف خوب بازن نتیجه خوب بگیر هدف نزایی شهست دوربین هم اونجا بازاری طرف کار خودشا انجام ده چون ما یه جایی دارم بخون دوربین گذاشتیم من چون مثلا هم دوربین اونجا گذاشتیم که اونجا دیده بشه تمام یک ماه بعد دیدیم مثلا منیتوره هستم نیزه دیگه دیده نمیشه. این توی یک ماه هر روز یک سانتیمتری میز کرده بود هر روز یک متر. توی یک ماه شده بود نیمه است. دقیقا شده به طرف فرار بکنه از اون که بوجود داره فرار میکنه هدف دفت پشت کار میکنه میامیم معذر جامعه ماست همه دولتی محورم همه در واقع زمان محورم همه دنبال که خب حرف هایی نیست دیگه. اونیم اون فهم فروش دیگه سیستم های ما نیست. و بهترین شرکت ها و کمپنی ها فکران از هم کمپنیک مثل دولتی ها کار رو با همچین منظم هاشون. اگه دولتی ها خوب کار همه هم شدن. واقعا نیرو هاشون فوسیله. خودشون کارایی کارهایی ندارن. از بخشی ندارن. همین مشخصه دیگه. دنیا داره که از هم خوشت به آلمان بهتون گفتم دوبار با خاک اکسان شد دو تا جنگ دوبار با خاک اکسان شد تو جنگ جهانی دوم از هر تا ساختمون آلمان یه سال مونده بود بعد شموزه ملیون کشته ما کل جنگ هشت سالمون یکش تا شهید و جانباز داریم فکر کنم هفت هزار تا تا جانباز داریم از که 400 هزار هم شهید داریم کل جنگ هشت سال ما و از ساختمان های ما چی؟ چقدر ساختمان دارد شد؟ آن ما چی کار کردیم؟ وقتی میدیم فهم فروش هم یه دیگه اصلا شما تو کشور آلمان اگر موقع بودید بعد از جنگ اصلا میماردیم می گفت من این تر بازهایی بدارم این به بانک میداد این رو میدیگم که من یه تر بازهایی دارم میخوام با یه تر بازهایی کار بکنم همون اون میمات بهت یمیدون 200 متر رو برو هفته بعد گزارش بیاد پول بعدی گزارش بیاد پول بعدی گزارش بیاد پول بعدی با آدما به دانشجوش قدرت داد مثلا شما دانشجوی رشته مهندسی لیتوگرافی نرم افزار بودید ایده ایده‌ای تو ذهنت بود مثلا شعبات باکشون تو دانشگاه داد دانشجو میگه من طرح دارم گفتید چه گفتم تول مثلا نرم افزار مثلا یه چیزی همون لحظه به دانشتوی اعتبار میداد برو کار کن تولید کن من حمایت کنم تولید کنم، من حمایت کنم دوباره بودن شد قطب اختصاری دومیدا شد اون هدف خوش هست میکنه می برای این چه؟ هدف باید صدوشو توالیم میشه خب با این موقع های دقیقت این, این خیلی مهمه توی سیلس می نده بین هدف، ابزار و کار اینا ها رو خیلی مهم خیلی میتونی جنس هدف و جنس ابزار و در واقع کار با هم فعال میکنه جنسش رو خواهد متوجه میشید و هم نکنم وارده هاشی بشه یه نمونه هدف همان بهتون نشون میدم مفهوم نوع جنس، منابع روش انجام کنم هدف، کمی و کیفی هدف باید توش عدد باشه توش کیفیت باشه مناوش سازمانه، نوشت انجام عملیاتیه یعنی باید اجرایی بهش فکر کنیم مثلا کار کیفیه اصلا در مدام اینکه من نیرو دارم یک سال مارخستی نرفته خیلی نیروی خوبیه یک سال مارخستی نرفتن نظر کاری نیروی خوبیه انظر هدف نیروی خوبی نیست یا انظر مثلا افزار نیروی خوبی نیست کم کار کیفیه منابش توانمندین این روی روش انجام اجرایی وظیفه هم همین در من این ابزارها، ابزارها کمی عددی هم منابش امکاناته، روش انجام تدارکاتیه ابزارهایی که شما باید کار بیزایید مشخص میکنی که در روز باید مثلا ده تا تلفن زده بشه در روز باید شما دو تا جلسه حضوری داشته باشید این جنس این عدده، این هدفه این جلسه ابزار امزاره هاش باید باشه دیگه امکانت می میز نمید به طرف بدی، اوتاها نمید به طرف بدی ماشین ن به طرف بدی که مثلا بر در جلسه بذاره من میشه اون اکانا. اون تدارکات که به حضورتش باشه کارش تمامننده این نیروه من... کسی که در تهران در روز دو تا جلسه بذاره خیلی خیستگی داره تو این ترافیک شما از این برشبه برید اون برید یه جلسه بدارید خب از اون برشبه برید یه جلسه بذارید خب مثلا این خارمونت نست پس این برگرد نه من که خیلی توانمم باشه پس باید شکست بکنم جنس اون آدم کیه که کی قراره کار انجام بده؟ این ها از این موضوع مثلا مثال داریم مثلا داریم هدف فروش 80% یا جرز و من با چه ماموریتی مفرم باید انجام بدم؟ پیش برد فروش یا اونتا توصیه نوازوار، این میشه معمولیت من؟ فروش 60 دستگی، پیش برد فروش کار، چه کارایی باید انجام بدم؟ پیگیری های مکررد، تماس با نموندگی ها، انگیزه نیزه ها، سیستم های برای پرسنل، تخفیف ها، جدید جنسش کاره، باید. وزیفه، چه وزیفه؟ ارتباط با تولیب کننده و چیزا سرجیره باشم؟ پولشم رو می‌دین. چه ابزاری با باشم؟ تلفن، فکس، پرینت، ایمیل، نه ابزارش. اینا رو جنس رو هم یه جدا بکنید. باطی می‌کنن بعد نمی‌شه. حذف وسیله ابزار رو می‌کنیم، اشتراپ حسابو می‌شه. ببینید، این فازه، این فایلره. قراره هستم با حذف بالاخره مسئله‌ای که ببینم، سی آماده کنید بعد فکر کنید. ابزارها رو خانگازه خیلی, خیلی لوری بنویسید راحت به را توانگورده من اتصاد به کسی نباشه من دارم زبان ساده زبان بسیار ساده نویشته بهشون ست یه هدف خوب باید چه ویژیگه هایی داشته باشونم اما اینا روشنگ هدفه اصلا هدف گذارید توی بحث فروش اکثرا مشکل دارن توی این ویژیگه رو ندارم اصلا باید خیلی روشن و بازا و پس باشه گونگ نباری من هنوز هم هنوز با کسانی که دقت کنید دقت کنید موضوع به من محصولی دارم مثلا پنجه هزارتان قیمتش خب؟ ما که نارو مارکتینگ که نارو مارکتینگ نارو مارکتینگ مارکتین. یعنی چی؟ مازاریابی یا؟ هسری یک قانون داریم بشمیدیم ذهن قدیم ذهن جدید شما اگر عداد دو چیزهایی که وجود داره با ذهن قدیم یعنی با ذهن سنتی با ذهن یه بچه بگی به طرف بیشتر کارهایی داره که بیشتر اثر بخش داره بیشتر بیشتر تاثیرش بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر. بیشتره تا به ذهن جدید بگی مثلا نامتاییت من هم پنجاز افتی جنس دارم به طرف 10 ده تخفیف خوب تخفیف درسال ها این چنم میشه؟ پنجه هزار پنجه هزار باید داده، این پنجه هزار تمام ده بیرایش از و از این پنجه این دردت ها چون چوندم شما باید ماشین استاب بیادی دردت هزار شاید عدد خیلی ساده به کار بردم ولی تو ماشین کنم کنید هدف هم, هم باید باشه. مثلا خود با سال دیگی ما گفتیم. دوتا تماس. ستا تماس. چهار تماس. گزارش های فروش سیلز ریپورت. داخل کنید سیلز ریپورت. که از کارمند که شما بگید باید هرش عددی باشه. مثلا نمونه سیلز ریپورت ها هم, هم داشته باشن. این سیلز ریپورتی که این بحث راند کردنی بعدم برای مشتری ما پیش نگیره که مشتری بگی هم 5 تا مثلا به فرض مثال گردن ثابت رو تخفیف بدن جای بالا پای کردنش وجود داره. از بیدی بیدی. کردن اصلا باید رون کردنم تحت تخفیف. رون روند همه هم اصلا بعدا روند مثاله. مثلا وقتی شما خیلی ملوسش می‌کنی جای بالا پای کردن وجود داره. بله. مثلا <تصفح> این کار انجام بدیم. ذهن ساده ما میگیم ذهن با ذهن یک بچه به همه چیز نگاه کنه. ذهن کودک. ذهن کودک ساده است. آه. روشن واضح شفت مثلا گزارش فروش که شما از میروهاتون میخواد بگید بر اینجوری باشه تعداد تماس، تعداد جلسه ریال فروش وزن فروش حجم فروش این. تعداد فرس تعداد معرفی یا تعداد مشتری تعداد مشتری جدید به این گنگی بزارش خوب شود خیلی روشن با زهری واقع اینو نباشه هدف کسی نذارید که شما باید در سال 20 سایت برای من جلاز یا شما در سال 10 هزار صفحه مثلا ترجمه مرتبید این هدف هایی که خیلی آبه باید چیمی یه ترجمه خوب با کلیفیت یک صفحه کاملا یک ساعت زمان برای بردیم. با کریفیت خوب ترجیح نمیکنه. مثلا سرعت زیاد بشه میاد پایین. تو اصلا میگن آن. آره دیگه سرعت زیاد بشه میاد پایین. چون مثلا اینجا هم یه باند خیلی کار میکنیم. و شما کنم شنگو خوانیم از زمان. از چطوری میشه شنگو شنگو میگویم. هدف گذاشت به مدیر فروشش که تو اگر تو تهران دو میلیار بپروشی من یک توسن ببینم توسنن هم خرید گذاشت تو شرکت با یک طرف ببینه تحقیق بشه این مدیر فروشه واقعا اون ماه این کاره کرد این با چه قیمتیه فروش سوری، از فاکتورهای سوری، جنس رفته بود تو اول فروش انجام داد توسنه گرفت توسان گرفت ولی از ماه بعد مشکلات شروع شد برگشتی، محجوعی نشون به که دو ماه بعد طرف تا به زود سوریش شد این مدارک رو حتی که را میگم واقعا طرف نیروهاش باسخانی کنم خود فروشی کردو ولی که ولی این فروشی یاد بکنم این چه با هر قیمت فروشی جا بگم هدف هدف پی خودی بازاشتیم سهم بازارت رو نگاه کن، بسنج. چقدر جای کار دارید؟ او چی کار میکنیم؟ ما هر قییم چه فروق ؟ با هدف باید خیلی ساده باشه پینج کننده باشه خیلی هم کنیم نباشه مکتوب اونرم رو کاغذ باشه. موقعیت به زمان باشه زمان زمان زمان, زمان. همش گرم هم زمان قطتل انسان ها رو با عدد میتونی کنترل کنی، انسانها رو با اعداینکنل در هر کاری توصیه روکن بتون هر کاری به نرو ها بدید؟ آخرش عدد بیاری بوری این کار بر من انجام بریم کی من تحمیل میدیم؟ که منتظر باشن؟ ولی گرستن بهش بگید که بوری این گزارش آماده کن رفت بعد ما انسانها ها یه پایده ایمون بریم داخلی راموس اینا ما اصلا ها یه عادت داریم دیگه مثلا شما می گزارش میخوام میری منتظر میرونی تا مثلا آخر وقتش رسیده. اینو شروع گزارش رو کردن گزارش آماده کردن. 90 دقیقه است هستیم. اکثر ما در ایران کل جهان اینجوریه. نه ایران بسون این قایله اسمش رو این قاعده, ای قاعده گذاشته بود. اه... که اسمش هم نمی‌دونم نا. که آدم معمولاً این زمان دیره آخر مثلا ناگهان فشار مذاکرات اون روزا این همه شما وقت داشتید چیکار داشتید؟ جو شما کارمون همین طور. می‌خواهم اصلا یک جلسه بدیم. می‌ذاریم تا آخر وقت. تو آخر وقت انجام. گزارش می‌خواهم آماده کنیم. مش میخوایم بنویسیم روز آخر. ایمیل می‌خواهم بزنیم شب آخر. همار این دوستیم ن. حالا این دقیقه نوید، اگر شما نزدیک تر از سبا پیش‌جنب می‌دونید. ما میگیم این حتما باید عدد باشید کارج. باید من یک چیز یاد بگیرم راجبه این دقیق اون که این دقیق را تغییرش بده اینکه اگر فکر کنید ذهنتو کوچوت کرد همون اول اول نشید رمدو کارپای ساده یک گام بردارید یعنی از اونجای تون بی خودیا برید یک گام بردارید مثلا فکر کنید مشکلت اون هر زنگی بزنید حتی شده الکی حتی شده زنگ بزنید که شماش بیر اول لیست موبایل تو برا که فردا صبح آماصا دو شام میخواد فردا صبح اگر این کار رو نکنید به شما قلبه میکنه کم کم در پخارهای کیبیدی و ماهای بزن دیگی تو نم نمیتونید کنشید یک از از کارهای کوچک جدیه بگیرید کار بگیرید نمیتا فضیل باشه هدفت ملتعید باشه هدفت هدف منافع زیر منافع زین در نظر بگیره متناصر با منابع امکانات باشد نه که شما یک خط تلفن داری هدف پوزشتی برای چهار تا یک نفر فاکس داری هده 5 برای پنج امکانات باید در باز, هدف باز, نمیدم. باز رو هدف به اینکه می اول باابسته به هدف اینقطیم بهتون میگم که باید حوااستون بهبلیج هم هدافتون باشه مثلا گروه های فشار دولت روغوا اتالعه کارگری مشتدی آن هم اول جوان اقتصا های تکنولوژی اجتماعی میید نه رو هدفتون تاثیر میذاد باید هدفتون قابلیت اناتاف رو داشته باشیم یه دف از او راهانی مت دوست مامکت اون یه دف میشه دیده. همان همون میتونم میدید یه هدف شما تاثیری بازداره یا یه دفعه یه اتفاق میفته یا حقوق ماهی میفته قابل... یا پیش بکنید که مثلا میگم این هدفتون رو که میدیم هرداد یه جوری بالا پایین بکنید با که افضان نیروتون اگر دو روز مریض شد نگم یه هفته ما رو خسیقه نفتیم همیزی نیمشه دور جواب جا با جا کرد ولی تلرانس بزارید مثلا شما در ماه باید این در ماه، مثلا در هفته، باید چهل تماس داشته باشی مثلا ما یکی از کار کردیم چون در هفته باید چهل تماس داشته باشی ولی یه خورده من این چهلتها تا سی و پنج را میگیدم که اگر این پنجتهایی که دارم اینجا به آبانس باش میدم میگه اتفاق بیفته مریض بشی، نه یک مارخصی بیش بیاد یا مشتری تلفنش مشغول باشه، جواب ندهی؟ چهلت نمیده سی و پنج بزار. سی بزار. مصالبه طرف گفتیم که یک تارگیتیم یک یک نیروی دادیم شما در هفته باید دو میلیون تمند فروش داشته باشیم ولی اینو گفتیم یک چون دیفتان رو گذاشتیم برای نهر ندر بیاریم که اتفاقات رو نشده است اصلا این یکی ایچه چی بوده این سیف کورسه اون پولدر ها برای هستش جزبان هست فایلی که بهتون دادم هست اون فایلی که بهتون دادم اونجا هستش اون 500 ملوان. این نمونه نمونه یک بعد باید اینجوری آماده بشه جداد اکسل باید آماده بشه بیدار شه اونمش اونمش اصلا اعتماد شما نخواه کنید اینا فاکتورهای طرف گزاریه کالا به فروشنده فروشنده به کالا فروشنده به تولید کننده مرکز فروشنده الان ببینیم مالتی لول مارکتینگ هدف کالا به فروشنده یعنی چی؟ میزن کالایی که موجود داریم فروشنده رو عاشقا میکنیم بجرم من که این مثلا اینجا خربار خربار جنس ندارم که بهت بدم به هر فروشنده یه میزن مثلا من به هر فروشنده یه رو میدن که مثلا 20 تن گندم به فروشه من منابع محدوده و من اصلا منابع میام به فروشنده هدفت میزنم گندمی که من دارم محدوده‌ من در ماه میتونم مثلا 500 تن گندم داشته باشم به شما به شما یه خوشنده‌ی ای هفته فروشنده مثلا 20 تن گندم پس کالا فروشنده و کالا باز تامین معکوس میشه اون فروشنده میذاره بر اون کالاها کالای فروشنده خوشنده‌トルکننده چی اون به دو جور میتونه باشه اینکه که یه جاهایی ما موادروریه داریم این وقت به شرکت های تولید کننده باز می تو توی قارب کار و فروش فروشنده می تحصیمش آره مثلا شما پشت تولید کند کار می کنیم به تولید کننده ها تدر می یا فروشنده به مشتری داریم مثلا مشتری سال گذشته من مشتری سال گذشته از من صد می خرید کرده این سال رو باید مثلا سال رو پرجام بریم داشته هدف میشه بفرویم، هدف مشتری با مشتری خود هدف میزه سال بعد من با این کمپانی، انوازه دو میلیارد کار کردم امسال میخوام مثلا دو میلیارد کار رو کنم سال پیش من با این موسسه امت کار کردم. امسال من من امت کار رو کنم هدف بذاری روی اونو این مسیر ما دیگه فکر اصلا یه ران تاکسی داشتم خیلی جالبه مثلا من خیلی یه سری مقایسه من تعجب میکنم مثلا از بودن شما تو این کلاس تعجب نمی‌کنه ولی مثلا یه راهن تاکسی میاد ام بی ای من خیلی تعجب میکنم مثلا بعد گفت که من روزمدارم اینجوری بود گفت. گفت آره مثلا من مسیر ست خندان به مثلا بنک کار میکردم گفتم سال گذشته من از این مسیر انقدر درآمد دارم امثال می‌گم که مسیر انقدر بیارم اعصاب می‌ذاره برای خودش که شما سی شرط در یا مثلا مثلا ماشینم مدل 70 بوده سال بعد میخوام مثلا میخوام ماشینا برسونم مدل مثلا 80 10 سال پیشرفته بکنم پیشرفته نمیره به هدفش هدف یه مشتری مثلا مشتری ثابت کرده خب این خیلی خوبه دیگه من مثلا با مشتری گذشته بودن اعتماد هم هست بکنن که به هدف خودم برسن سال پیش من با این مشتری که من ترجمه دادم من سوده میدار کنم اینقدر کار کردم، امسان میخوانم اینقدر کار بخونم خیلی موقع ما به مشتری دروقع رقم میدیم، عدد میدیم خیلی راحت داشت میگیم که فلانی من سال گذشته تو اینقدر خیلی رسوندیم؟ امسان رو من اینقدر خیلی چه چکار میتونیم با همیه انجام بدیم؟ چه براما میتونیم به هم نشته باشیم؟ که با هم میبینیم؟ روحت صحبت بکنیم این چی کار بکنیم که امسال من و شما و من و شما بهم گیریم خیلی ببسمیم. یا اصلا مرکز فروشنده مثلا ما تو گستان ها برای هر استانی مثلا یک هدف می‌ذاریم. مثلا من خودم برای گستان ها هدف دارم. مثلا سال گذشته من از بندرقاس، از تمنیره و سخن رایم این ملبقی داره بردم امسال بکتم باید هدف گذاشته یا اه, کمپانیا که مثلا من باشو کار می‌کنم هدف می‌ذارم برای اوسان‌ها برای کمپانیا. سال گذشته با شرکت مثلا چای بزرگ کار کردم امسال مثلا من با شرکت چای بزرگ کار بکنم سال گذشته با شرکت صنعتی خیلی بزرگ کار کردم امسال من با شرکت صنعتی دیگه کار بکنم یا نامه می‌ذارم به هم مشتری قدیمی که مثلا پارسال من با شرکت عاشو کار کردم امسال مثلا من با شرکت عاشو کار بکنم باید نمی کنم باشم کارم امسال یک چیزی از آخش رو اصلا من مردای که بینامالی میدن به مشتریم ای یک فاکتور، و مزید رقاباتیه من تو سرادم اضافه کردم طرف مقابلم میدنم مشتری، مرکز، ازرکننده حال فروشنده، فقط نه همش باریکسه مثلا مرکایی تیم، اسپریل خب، این فکار ما یک شرکت آرشویه داشتی باشه. مثلا تیک فروش تعدادی سال این بوده ریزده میشه؟ بزرگ دارد. مثلا پلاتانیوم این محصوله خوب فروش تعدادی سال 225 فروش ریالی سال 8 ملیون سا 25 درصد سال درصد فروش من این انو خب من برای آقای علی رضا محمودی کود هدف بذارم فروش قدادی سال این هدف اینجاز این مانو گذشته شد درست این سال گذشته این بوده امسان میخوام این, این, ام این هدف رو بشت سال گذشته این بوده امسان میخوام این هدف رو خب بشت این هدف هدف امسال. خب به این شب اشخص میکنید که جداد اکثر بهش میگید یا آقای کرمی فروش ریاره سال بده هدف حدف کداشتش اینها بوده سال گذاشته این بوده امسال پام این باشه به آدم ها به این شکل آنکن هدف شده منطقهش اینه که اکثرا من دارم قیمتان رو میدم می دووراورد شده باید اصولا همینجوری باشه بله دید من تغییر دهیم بر در اصلا از شما که اتوالی که بازار افتاده، اونها به این شکل در حدف بازاری میکنن این میشه فروشنده، کاره فروشنده، فروشنده کاره فروشنده فروشنده مرکز فروشنده مثلا غرب باشه، شرق باشه، جنوب باشه، شمال باشه ما مشخص میکنم، مثلا شیراز باشه شیراز رو درست سدن درسته شیراز مثلا <تص> شیراز به سواهان به شهر مختلف هدف کنید مرکز فروشنده هدف کنید فکشنده کننده هدف کنید مثلا این هدف مثلا خود شیر مشهد ما از این طولی کننده امرت بگیریم و بکشیم روز سبت مثلا هدف گذاشته مثلا ناپنه از تولیپرس فروش ریاری سال اینجا اون کنم اینجا مثلا شرکت فروش ریالی سال از تولیپرس سال بازاشتی یک میلیارد خورده فروختن هدف, هدف, هدف یک میلیارد حداکثر یک میلیاردیه حداکثر امسال چندیک سال سال این بوده یک میلیارد چهارصد هدف گذشته یا مثلا تولید دارو بود. سال گذشته سالستی یک میلیون یک میلیارد بوده اتی این یک میلیارد میشه یک تریلیارد درسته یک تریلیارد میشه سالستی یک میلیارد بوده امسال سال چهل میلیارد هدف گذشته مرغ هنگ تا توانی تو این میشه تولید کننده، هدف کذاری برسی تولید هر تولید کننده چرا ما هدف کذاریم یکی ها نمونه است و میخوام نمونه ببینیم این اصلاحی تهاری که ندارم ما ندرگیری نبودیم مثلا ما با همین شرکت ها کار کردم با کار ازمی با دانا، با همورد، با کخصر، با همین رو نبودم بروهی از کاری این سال ۸۸، ۸۹، ۸۹ همین کمپانیا رو من کاملا می‌شناسم. اصلا کار کردن کاری ایزای باشون انجامیده اصلا تفکوشه ها، وطنته، تسجیبته، اینا همه یک کسیم که ما باشون کار کردن با تونیک رسیم تودیلداره آقای اسمایلی، پیازا آقای بهترید، میتانا همینا کسیم که ما دارد باشون کار کرده. حتی سهان وزن، بعد داری شکل یعنی هدف هزایی سال یعنی سایی سال مرکز توضیح این هدف به مرکز توضیح میشه مثلا من به مرکز توضیح هم یا به مشتری هم تا هدف دارم هدف مشهد من تو داروی، تو این بوده تو داروی هدف سالم اینجاست سال 53 میلیم سال بوده بوده؟ این هدف ۱۰۰۰ سال، مشهد آره شاید این چون محصول نبوده هدف پایین آمودن بود ولی اینجا ۲۰۰۰۰ بوده ۳۰۰۰ کردن هدف همه سالشون است و قضای شوینده همینطور با یه سال از این پرسان چرا ما ما موقع اصلا چند تا هدف میذاریم؟ هدف A، هدف B، هدف C، هدف D؟ ثابت یعنی ثابت نه نه هدف چهار شرط هدف می‌ذاریممون می‌گیم هدف پایه 1 هدف پایه پای A پای B پای C پای D چطوری کار می‌گیم تو حالت هزینه آره تو شما توانایی آدم نمی‌شه کاربرد کنه تشخیص بدید اینه بچه دیگه ببین اگه 18 بگیری بهت کادو هدیه میدم اگه 19 بگیری بعد دو چرخه میگیدم اگه 20 بگیری بهت پراد بیدم جمال براش باز میذاری اینجا همون را کنید چند حده، هر رفت A و D یا C و D گذاشتید به فروشندهاتون با این کار را قدرت بشوری اگر این ماه چهار میگیم به فروشی اینجای میدم سکه میدم اگر 10 ملیون بپشید دو سکر. اگر 20 ملیون بپشید سفر سکر. ولی باید خودشون رو درگی بکنید که خودشون را درگی بشنش, بشنش. خودشون باید تشخیص ترجیح بدن، کار بکنن خودشون را خودشون باشه، در, بشن بشن. در این کار باید انجام بود چون توانمندی خودشون را کنید خیلی مهم، باید با زب چه می تونی به ما خیلی ماند قرار می بهش یهش میام که مثلا میگم ون دهم میام قرار ماهی رو شام میام یه بسم میگم به من از مدیرامیدی یه سکه میگیردم. به خودمون سکه ام پیشوده هستم خلاق میکنم. حالا با این معموس برشوند این قیم معموسش بدهی. درک میکنی فروش بزرگتر قوانیده و این گیزت قوانیده. باور نداری زور چپونی نیست که تو سمت لندنگات به فروشی خدا میشوند بود. گفتم ترمین تو خود فروشی کرده بود که مثلا ما این کار انجام میدنم ، برنادujemy به زور أتفاق نمیفته باید که خودش میده باید انگیز اتفاق میفته اینو ما باشیم ادفگذر بایی عمال پلهی به این یک پله بود به این پله برسی اینو به این پله برسی اینو به این پله برسی اینو به این پله برسی بعدی شها خست میکنه. یار از نظر ما مرکز کنترل کننده بعد از خوده هدف هدفت ما به در موقع تولد کنن مثلا من هدف من هدف را طب را طب مشخص <تصفيق> حدث و لامپرفروب رو تو استانا تقسیم کردم، <تصفيق> به لامپرفروب رو گفتم <تصفيق> که احواز من هدفش اینه، شیراز من هدفش اینه، کرج من، مشهد من، اصفهان من، رشد من، ارومیه، علاق، تبریز، همدان، لام، با هدف به اون طولی کننده دادم. یا به سرپرست حدث دادم، مثلا به سرپرست نیکی هست، به اون آدم، مثلا میرا پس <تصفيق> برای تک تک افرادی فرساز بانده اصلا حرفشون رو در این می مثلا هم در سید محسن اینجا، سروسه؟ بله. به اینشون گفتم که شما باره از تولیپرس، امقدر بپروشی از آسترانو قدس رنزدگی، امقدر بپروشی از پاکین شوی، امقدر از کامون شایکنگ، امقدر بپروشی از کشت و سند برگان شعبه، امتر بپروشی <تصفيق> به طرزار دفتاری این چند این چندتا شرکت رو بیشتدم از مینا باید vir از ایریکا باید vir از مخنام باید vir staple از پیازار باید بایدن virpan از پیش و از اما شغول به حسنی mg به این خانوم در را این ها این شرکت ها رو این هم هردخورو بشتدم آقای روشن این ها این هردخورا را اضوچ حتما یه تناسایی بین محصولات این شرکت رو وجود داره برای ما شروشه بله بله مثلا دکتر بدری این شرکت ها رو اشتادم این رو ازش خواستم بیده بخواهم استاد دقید دارستازی رو دارم این هدم تزدیف که بودم این هدم پار سخنته بودم با این هدم استادم مزاکره ای که گفتی در صورتی که فقط شخص بگیم مثلا خیلی زیاده و من نمیتونم و اینا میکشیمش کنار میگیم مثلا چقدر میتونی اگه خب اگه دادیم قبول کرد که دیگه کار خوش انجام انجام میده گفتن فروش شاید خیلی شما رو بگیش کنر خود خوشتو بعد خیلی فرمون روش ما به اینجا میرسیم که یه فروش رو به هم میدونم دوره بیست چهار ساعت، چهل ساعت. پر... ساعت, ساعت, ساعت, ساعت. ساعت. ساعت، من که منجمد همیشه به ساعت هستیم یه تو اون دورها میگی، این دوره بیست ساعت و ده دو درسته. دو چهارده چهارده چهارده اون و شصت و شصت و شصت و که و شصت یا چهار که نفر دیدم کلسه چی؟ نمیدیم این چهار نفر نمیشه باقیم هم دقیقه یکشون هم بزرد و صبح باید تحمیل توزیم حالا دیگه باید، سخت میشه حالا تعداد کمه خیلی خوب راحتی مثلا تا اینجا رسونیم به نظر من خیلی آمی میشه بنام توانی که حالا یه برای کیب باشیم زعودی کشید تو فلشه و فایلر خوبی پون سر که